اللهم <سؤال> صلی اللہ <سؤال> فاطمت و بیها و بعلها و بنیها و سر المستودعی فیها و عدد ما اخوتا به المکر اوزو بالله من الشيطان اللین الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الان اول ظالم من ظلم حق محمد و محمد و آخر له و ذلك اللهم الان الاصابت التي جاهادت الحسین بشایعت و بایعت و طابعت اللا اللهم لعنهم هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگار از اینکه در خدمتتون هستم خدای من شاکه شاکرم. وقت گذشته من بحث چهار شب پیش رو ادامه و بحث اخیر امشب آخرین جلسه بحث بنده هستش. دستگاه ادامه داره. ما دیشب و های گذشته از نعمت از سرات گفتیم و ویژگی‌هاش و این که همون عبودیت همون امام از براعت گفتیم از جایی که این سرات مشخص میشه از غیر سرات مثلا لفظی هم که در روایت ها استفاده شده اونها رو میگه سبول راه های یعنی خیلی زیادن راه یکی راه اصلی از بلایه و از مصیبتی گفتیم که چقدر اینجا رحمت واسعه میاره و این ویژگی خاصه حضرت، یعنی ببینید اهل بید کل هم واحد هم مثل همه فرد نمی اما بالاخره راهو که داری میری هر جشیه ویژگی خاص خودشو داره. Yeah. یه جا هست مثلا منظر قشنگی داره یه جاست استرادگاه خوبیه هر کدوم متفاوته. یه سری چیزها هست خصایثه یعنی برای هر امام مخصوص بر خودشه یعنی اون. این جز خصایثه آقا عبا عبدالله الحسین این موردی که رحمت واسعه رو خدا در وجود مقدس او قرار داده. و رسیدیم به آخرین دعای بسیار بسیار مهم زیارت و آشورا که اللهم اجعل محیای محیا محمد محال محمد و مماتی ممات محمد محال محمد, محمد یعنی انقدر شبیه اهل بیت طرف میخواد بشه که زندگی و مرگش بشه چی؟ اهل بیتی میخوام امشب از حیات سریع خورده گذار کنم از مرگ بگم که چطور مرگ اهل بیتی یعنی اون دنیا یعنی این سرات ادامه داره که برده داره ببینید آدمایی که دوست دارن خودشونو شبیه بکنن هرجوری مثلا یه جوانی می‌بینی یه مدل خاص موی می‌ذاره میگه چرا میگه فلان خواننده خوشم میاد دوست داره اونو مثلا الان این نیستش که باید. میاد چیکار می‌کنه مدل موی اون رو می‌ذاره مدل ریش اون رو می‌ذاره رنگ پیرهن اون رو تنش آقا اصلاً بازیکن خوشش میاد ساعت ورزش فوتبال شماره‌ی اون اون پیرهن رو با اون شماره تنش می‌کنه چی شده حب و محبتی که خب و محبتی که داشته تبعیت ها برده. یعنی خواسته شبیه هم بشه دلم نمیاد بقیه ما نگم یعنی باید گفت متاسفانه چند سالیه اسمای بچه ها داره به یه سمتی میره یعنی باید حواستمون جمع باشه خب ببینید اینا شخصیت بچه اثر میذاره اگر یه بچه رسمش گذاشتی حسیم این دؤمی به من آور میشنوه میگن برای چه اسمو اسم حسین؟ اسمم حسین بوده. میگه حسین کی بوده؟ میگن حسین رو نپذیرفت، حسین مهربان بود، حسین شجاع بود، حسین. و این آرام آرام اینها روی ذهن این و ساختار شخصیت این اثر میذاره که اینم باید خودشو شبیه کند به صاحب آن نام. درسته؟ یعنی ما شخصیت سازی میکنیم. حالا رفته سه گذاشته گذشته، یه دخترشو اسم یه گل تو بلغارستان. واقعا این چه, چه شخصیتی میخواد برای این بسازه اینم به شما بگم این اسم همین دو سال مده ها اون اسمه که گلی تو بلغارستانه دو سال مده بعد دو سال بچه دموده میشه خب و این یه خورده زشته, زشته. این هم دقت بفرمایید وقتی نکی رو منکر میان اسم فرد و میخونن اسم خودش رو میگن و باباشو میگن خب چرا باباشو میگن چون او اس گذاشته مشخص بشه یعنی این اثر داره روی حتی اون دنیای طرف حالا اسم من نمیخوام ببرم چون بالاخره اون بچه خودش مقصر نیست حالا پدر مادرش کاری کردن خب حالا قدیما ما طرف یه دو جین بچه داشت همه اسمو اسم اهل تو میذاش اسمای و اینا اثر میذاشت روی زندگی اون فرد خب یه خوردم سیاست های خود ما غلط بود یعنی سیاست‌های رسانه‌ای و فرهنگسازی ما مثلا تلویزیون مثلا یه یه رفیق سریال‌ها اسمای مذهبی رو کرد حذف کرد همش اسمای میذاش که غیر مذهبی بودن این یعنی آروم آروم رو ذهن مردم اثر گذاشت که خب حالت الگو داره برای مردم وا چه ایرادی داره اسمش طرف محمد باشه علی باشه حسن باشه حسین باشه زندگی می‌کنه ما داریم می‌بینیم آدمای همین اسطوره‌دار بعد اینجوری باشه و دشمنم میاد تخریب کردن اسمو خب با اسم امام جواد چه کرد خب یعنی با اسم نقید چه کرد همینجوری میاد جلو تو هر چی سنگر بری اقب اون میاد جلو خب این یه خردوات حواسون باشه یکی از شاخصه های این شبیش تر شدن حداقل در اسبگذاریه حداقل در اسپوزاریه طرف اسم بچهش میذاش فاطمه اسم دختر دخترشو میذاره فاطمه دم به دقیقه دستشو میبوسید این حد کاریه که میتونه بکنه من گفتم توی سخنرانی ما که از اقوام بود این حالا من خودم نایده بودم اینو اینو میگفتن اسم خدمت شما عرض بکنم اگر یه نفر حسین بود میدید دارن میزننش میرفت طرفش در میومد. طرف داشته بچهشو میزده تو خیابون گفته چرا میزنش گفته بچه به تو چه عبتی داره گفته اسمش چیه گفته بود حسین شروع کرد بابا عرض دادن تو هیا نمی کنی تو هسته دوسته می خب یعنی اینقدر احترام و حرمت خواهد بودن چقدر توی قسم همون بود به اسمم قسم به اسمت قسم به صاحب اسمت قسم مراقب باشین طرف تا اوپیما کنابا نشسته بود بف... خوشحال بود و فلان گفتم چه خانم خانمان بارداره دو روزی فارغ می شود بعد خودش من گفت اسم دخترم خانم بذارم آداش آخرش نم جای دمش ا داره آخرش بعد گودزیلا بود نمیم چی چی فازا بعد حالا نه اسم نگیید من گودزیلا گفتم که تموم کنم این جریانو بعد خدمت شما عرض کنم گفتم اسم خودت چی اسم اهل بیتو گفتن اسم خانم همینجاست اسم خواجه الله مثلا رضا بشه اسم خواجه مثلا بود چی اسمیم میخوا بذارید بعد گفت میخواستم اول بذارم زینب اسم دخترمو بعد گفتم اگه بذارم زینب بدبخت میشه سیاه بخت میشه این چرف مضحکیه داری می‌زنی تو. به من هزار تا زینب خوشبخت بد نشو بود. برعکس او از زینب صبر رو خواهد آموخت. از زینب شجاعت رو خواهد آموخت. از زینب یگانگی رو خواهد آموخت. این چرف، بوکسر. حالا طرف میگه محیای محیا محمد و مماتی ممات محمد ببین ممات مرگ همون که میترسین ازش دو دسته افراد وجود دارن. عده‌ای که مرگ براشون واقعا تمام از زندگی. زندگی تموش. چرا چون تعریفشون از زندگی فقط کجاست همین دنیا لذات دنیوی منو اشغالشون تموم میشه خوردنشو گشتنشو چرخیدنشونا تموم میشه پس پایان چی براش زندگی از من میترسه بله میترسه بله میترسه ولو جالب ببین، افرادی هستن به اون دنیا اعتقاد دارن یه اون دنیا وجود داره بله یه نگاه مبهمی به اون دنیا داره براش حل نشد اون دنیا چی درست حسابی از می میترسه چرا چون اسمن اون دنیا رو قبول داره براش مطلب جا نه افتاده همین همین دنیاست عمل میترسی ولی مؤمن از مرگ هراسی نداره حتی عجیبتر به تو میگه مؤمن به مرگ شوق داره خودشون افله نفله نمیکنه ها اشتباه نکنید خودشون به کشتن نمیده چرا چون اینکه از حقوقی که برگردنش حق نفسه خب حضرش که امام میگه من این هم بیمار داشتم آدم نیده بودم که مثل امام داراش زر وقت بخور بسید چیز عجیب قریب میگفتم چرا میگه خب این گناه داره اگه اینجور نکنم چون حق نفس همین گناه داره نمیم به این معنی نفل کردن خودم ما میریم بحثمون چه ما یه تا موقع که زنده ایم داریم اگر یه موقع به این نزیجه برسیم مردنمون برای خدا سرش بهتر است تا ماندنمون ما چیکار می‌کنیم؟ می‌میریم اون موقع. اون موقع می‌میریم. ولی موقع از آدم بودنش اصلا کارهایی داره هنوز. چه می‌دونم یه دانشمند خیلی بزرگیه. معلومه بعد بمونه. او نباید به این سادگی دست بره. اونجوری که اون, اون نفل کنیم. این اشتباهه. اما شوق به مرگ داره. یعنی از مرگ حراسی نداره. بلکه میدونه اون سوی مرگ چی است. مگه چیه؟ میدونه مسیر معرفت الالله تو این دنیا تا این حد بیشتر دیگه میسر نمیشه بقیه سرات اون وره شدی؟ اصلا رسیدی به عوارزی سر جاده اصلا قرار میدونی اونور ور قرار ماشین عوض بکنم قوانین عوض میشه با 200 تا سی تو میتونی بری اصلا اونور باند اوپیماه میتونی پرواز بکنی چون خبر داره با چه سرعتی میتونه تیه تریخ بکنه بعد این اصلا شوق داره برفتن منطقه هنوز مونده تا عوارزی میگه هر موقع من وقتش برسیم قرار نیست خراب بکنم رانه نگه الان بر اون موقع چون میدونه مسیر معرفت الالله همش تو این دنیا حاصل نمیشه اصلا استعداد این دنیا بر نمیتابه این تکاملو مثال بر تو میزنم کامل حل میشه و مراتبی از سیر الالله وجود داره که تو این دنیا فهم نمیشه فقط باید بیر اون دنیا مثال که من میتونم بزنم برای شما تو همین دنیا شما اینجوری نیست فقط اینجوری ببین همین دنیا ما چند مرحله‌ایه. یعنی رو همین دنیا بهترین موقعش قراره تو زهور محقق باشه دیگه اوج کمال دیگه در زهور چی میشه؟ محقق میشه دیگه بیشتر از اون نمیشه آخرش آقا برخی از افراد که ندیده عاشق امام زمانشونن و اولیاء الله میشن قرار خیلی از مردم مثل اینا بشن یعنی فرهنگ چی بشه؟ عام بشه بعضی از همین, همین جاش میتونن مثل اون موقع بشن و... یعنی به لطف خدا با هدایت امام زمانشون امام زمان نیست به کسایی به سر بزنه همین الان هست قبل این بوده بعد این هم خواهد بود دستشون رو نمیگیره هدایت چرا؟ اصلا کسی ام... هدایت رو بخواد وظیفه امام هدایت کردنه اصلا کار امام هدایت کردنه. اوگه نام خدا واسه چه آفری داشت بخواد برسه به اینکه من یه امام حی حاضر دارم نیاز رو هدایت شدن دارم تمس هدایت میکنه یه مثال برای شما میزنم آقا رسول الله یه مثال زده عجب مثالیه میگه مرگ از این دنیا به اون دنیا مثل به دنیا از جن وقتی جنینید از رحم به این دنیا به من بگو ببینم توی وقتی جنین در رحم هستی چشم داری, داری؟ نه؟ نه؟ یا نداری داری چشم داره میبینه چه فایده داره چشم داشتن یه سری استعداده ها داره که جز پس از به دنیا آمدن قابلیت بهرورداری بگید نداره تو این همه حسش فقط شنوایش کار میکنه اون اصلا قلب مادرش میشه چهار تای دیگه روحباست اصلا از دهان چیز نمیخوره. بند ناف میخوره. آمونیاک تو گلوشه. ظاهرا اینجوری میگن. اون چهار تا حسد دیگر گذاشته خدا برای که اونجا باید در مرحله جنینی تکامل پیدا بکنه بر مرحله بد اون رو لازمه. شدید؟ بر مرحله بعد قراره قضایی رو بچشه. چیزی رو لمس کنه. مسائلی رو ببینه. از حس بویاییش بهره ببره. اما تکامل این تو مرحله اول بوده. آیا الان استعدادهایی در ما داره شکل میگیره؟ بر مرحله بعد بله. جز پس از مرگم قابلیت استفاده نداره. جز پس از مرگم قابلیت استفاده نداره. اونجا به اینور مادی بود. اینور به اون طرف معنویه. ببین عزیزه من یه مثال خوب برات میزنم قشنگ مطلب جا یک جنینی رو فرض بکنید که تکامل درست پیدا نکنه چش نداشته باشه وقتی توی رحم مادر میفهمه چش نداره اصلا اهمیت داشتن چشم چشمو درک میکنه حالا سدی برش پیغمبر بپرس بگو بدبخت بیچاره چشم نداری میگه چشم چشم چیکار کنم میگه نه برای بله بعد لازم میگه کدوم بعد کی رفته دوباره برگشت اوا خروجی مسیری یعنی مرگه همین استدلاله مثال رسول الله ماهه تک تکه یه یعنی مثال زده آنچنانی خب کی رفته تالا چی رفته تو طالب چی گفت کوچ از چه چیه چی چش یعنی چی بعد این ناقص به دنیا میاد درست یا نه وقتی به دنیا میاد تازه میشه یوم الحسرت ای بیداد بی بقیه دارن من ندارم همه میتونن بدوان ای داد من چرا پا ندارم شنیدی تو محشر چه جوری دارن میرند یه میگه یک هست رو زمین می خزنه میتونه بره اون یکی نمیدونم فلان ها همینه تکامل پیدا نکرده تو این دنیا محیایه محیا محمد نبوده فلزا مماتش هم ممات محمد نیست بعد از اونم با بدبختی باید چیکار بکنه باید تو آسایشگاه گمش داره عذیت بشه عذیت بکنه من عذر میخوام از بزرگوارانی که معلول هستن این مثالو دارم میزنم ما مثال دیگه خب این بخشش مثاله یعنی آدم مثلا با خوب خیلی خوب جا میندازه نرسیده مون طرف چون این ور تکامل خوب پیدا نکرد توی زندگی که عادی مردمه همه می باید باید, باید باید باید نگاه کنه همه می بینن باید نگاه کنه بشه هیچ خبر نگ همه بو میکشن. نمیتون بو میکشن. و سخت بهش میگذره. زندگی براش میشه جهنم. تکامل پیدا نکرد. اما برای کسی که چی؟ کامل شده. و اعتماد داره به هر اون طرفی. بهش اثبات شده. با شوق میره. با اشتیاق میره. چرا چون میگه بقیه؟ از نیست هست. اون برقرار شکوفا بشه. هر اومار استفاده کنم از اینا اصلا ساختم و پرداختم که بهره ببرم کاشتم که برداشت کنم قابل قیاس نیست صدا چی میشنوی این همی صدا قلب فقط او یک داستانایی تو راه قرار مباحثه علمی بشه آهنگ بشنوی حرف بشنوی حرف بزنی اصلا مخیله جنین نمی گنجه. قیاس همون قیاس ها یعنی همین جیلی میره اون طرف یه نکته جالبه، من توی روایت دیدم خیلی جاله بود که لحظه مرگ لحظه مرگ دم مرد، همه خوشحال میشن حس خوبشون دست میده بلا فاصله بعد از اون لحظه است که درد شروع میشه بازی. این جنین جنین وقتی به دنیا میاد از اون محیط پر از خون و چصافت رها میشه اصلا این دنیا رو میبینه کف میکنه اما اگر معلولیت داشته باشه سختش چی میشه؟ شروع میشه. یه لحظه مرد طرف اون کسایی که حالا یه نقل کردن یه حسی بهشون دست داده به coma رفتن دوباره برگشتم من من خودم یه آقا پسری بود مثلا 3 سالش 33 34 سالش بود. یه کس فرنگسر آقا هستم تو جلو بهشا سخنرانی داشتم یادم کجا بود. بعد اومد بعد جلسه ما رفت بعد نماز ما کردن بهش گفتم آدم تو مسیری نبود. تو دریای مازندران غرق شد. گفتم قرد شدی؟ یعنی سیان نمیدونه شدی خاله بگم گفت این ناجی اومد نجات داد آورد میگفت من خودم خودم رو میدیدم اومدم بالا میگه میدیدم اینا داشتن نفس میدادم به من دقیقه شش دقه طول کشید میگفت انقدر کف داشت میدویده میبرم باید پر میکشیدم میگه بعد خودم خودم رو دیدم آروم آروم سنگین شدم سنگین شدم صرفه کردم آبریخ من برگشتم ببین من اثبات شد که همچنین چیزی هست و برگشتم فلان چیزی بشه گفتم خدا خیلی دوست داشت یؤمنون بالغیر ندیده و داشته بشه بپذیر منطق عقل من اینو قبول میکنه خب حالا یه هستن که چی نه نمیترزه از ما این ادامه‌ی مسیله. بیا حضرت موسی گفت خدا من خودت به من نشون بده برخي میگن زبان قومشو گفت دیگه و اینه حضرت موسی میگه خدا خدا گفت لند ترانی Amos تو که نمیتونی منو ببینی از مفسرین گفتن منظور یعنی تو با این چشم زمینی که نمیتونی منو ولی روی رو یودر ابسار ابصار این بسرا چشمه که نمینه اما بعد امیرالمومنین چی میفهماد امیرالمومنین میفرمااد که من خدای رو که ندیده باشم نمیفرستم این دیدن یعنی چی یعنی این دیدن نه میگه درک ایمانی خدا این درک ایمانی خدا برای خیلی اون دنیا محقق میشه چقدر شیرینه چقدر لذت بخشه از کجا فهمیدیم از اهل بیت چه اینا چی دیدن منم میخوام ببینم چه اینجوری مست و مدهوشن منم میخوام ببینم حسین از کدام جامعه می الهی نوشید چون طور تو قتلگاه برای خودش دست و پا میزد چقدر زیبا میخوام ببینم اینجوری می مثال بزنم از ترس از مرگ. قرآن میگه. میگه قل یا ایها الذين هادو. ایهودیو. ان زعمتم انکم اولیاء اول اللله اگه شما راست میگید دوستای خدایید، من دون الناس، بقیه مردم آدم نیستن، بقیه مردم بکناب، نول موت. اگه مردی رو از کنی کنه. به خدا دقیقاً رو همین دست میده، دست میذاره. ام کنتم صادقین. اگه راستگو هستید. ولا يتمنون عمرنا تمنای مرد نمی‌کنه ابدا به قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین من میره ظالمه ببین خوب یادتون هست اساسات اساس از ظلم و کیا بودن؟ ببین با تمام این ساختار همه چی جور در میاد اینجا که میخواد مثال بزنه امینار رو میزنه بس. یعنی یه مسیر یه امام حق داره یه امام جور این مسیر سرات اون مسیر به ناکجا آباد اینها پاکی شستشوی قص و حج همه خوبی ها اون بر شراب خوک نجاست اه. یعنی اون تجلی های گوناگون بر اون یادتونه شبه اول مثال زدم از نور از چراغ مثال زدم اونایی که بودن گفتم قدیما گفتن چراغ یعنی چی یعنی اون سفالی که توش روغن بریزی یه فتیره داشته باشه بعد شد چی چراغ با همون مفهوم میشد چی یک چی آهنی بود نفتش می فتیره داشت و الان شده چراغ این حالا معلوم بعدش چی یعنی مفهوم نور دادن بود اما مصداق چی میشد تغییر که اینا هی مختلفی داره شوق به مرگ هم میتونه مثال بزنی بله آقا امیرالمومنین در خطبه متقی میفرما ولد ولولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم. میگه اینا اصلا روحشون تو جسدشون نمیتونه وایسته ویژگی متقین اینه تحمل موندن تو این جسم خاکی رو چی؟ نداره تو این کالبه این سلول زندونه وزش میخواد فرار کنه از تو این درسته این بدن شده برش چی؟ زندون چون روح درک کرده حقایق آن طرفو آن طرف رو چشیده روح لذتشو برده این جسم الان چیه بگید مانعه صلوات بفرستید الله لم تستقر ارواحهم في أجسادهم طرفت عينه یه چشم به هم زدن روح تو بدن نمونه چرا شوقا إلى الثواب و من العقاب عجب شوقي که میخواد بره برای بیشتر اه. یعنی یک ادامه مسیر صراط اون بر ادامه سیر الله اون طرف میخواد مراتب بالاتر خب پس اگه مگ براش خوبه پس چرا میگه خوفم منل اقا و بعد گفتن برای اینکه میگه که من هر لحظه تو این دنیا باشم احتمال جهنمی شدنم چیه هست میگه خطبه چی متقین یعنی تو اون لحظه چیه این متقیه با تقواست اون لحظه بهشتیه اما تضمین نمیکنه که تا یک ثانیه دیگه هم اینطور باشه مثل کی مثل زبیر مازال زال زبیر کان رجلا اهل البیت چیزی نمونده و زبیر مردی از ما اهل بیت الله عارف. حتی نشع ابن المشموم عبدالله الله تا اینکه اون پسر شومش عبدالله الله بزرگ شد و یکی از علاقی که تو این دنیا نگهت میداشتی بود خب بنی، حب به آیا قرآن داریم میگه خب بنسا میگه خدا اینا تزیین کرد دنیا براتون تزیین کرده خب بنسا خب به فرزند مرکبای خوب اورا اینو میگه میگه مرکبای خوب عشق میبرزه به اینا اینا همش تنابه نمیتونه بکنه و عبا عبدالله خودش علی اکبرشو میدان میفرست تفاوت این دو دیدگاه و این دو حیات فلزا در نتیجه دو نوع ممات در همینجا در میاد هیچ وقت به خودش تزمین نمیده میگه از کجا منو مگه بلعمه با اورا مستجاب و دعوه نبود قرآن با عنوان کل ازش یاد میکنه سگ بهش لقب میده این داوره. در داوره یعنی حساب هر لحظه تو نیاز داری به امام عین گفتن برق توی سیمه یه لحظه قد بشه هر لحظه نیاز داری به ام. هر لحظه نیاز به این هدایت داری و به مداومت هدایت نیاز داریم و الا کارمون خراب میشه امام صادق میفرما سرات هم توی این دنیا اون دنیا هم ادامه داره یعنی این مسیر سیر الاله اون دنیا هم ادامه داره قران میبینه چی میگه قرآن میفرمايت ان هاذ القرآن اقوم این قرآن هدایتگره برای اون که چی اقومه اقوم از همون رشته مستقیم میاد یعنی همونی که تو صراط مستقیمه همون که استقامت میکنه اینالذین الذین امنو ثم بعدش بعدش استقامت باشه بعد شما نگاه بکنید ببینید خطابی که معصوم وجود داره چیه؟ انتم سراطل اقوام انتم سراطل اقوام شما اون راه اقوامید اقوام همون قوام هم مستقیم از همون میاد بر باب استفال. چون تو همون مسیرید ادامه داره اون طرف اگر اینجا نگاه کن اگر اینجا یه سراط هم شنیدی پل سراط اون چجور را میلی روش؟ شنیدی میگن باریکیه مو شمش، تیزی لبه شمشیر. بسته که داره تو این دنیا چجور تو سرات بوده موشه بر همین آقا مام صادق فرمود ابو بسیر نرم میکنه از آقا مردم بر چند طبقه و نو از سرات میگذرند و سرات از مو و تیزی لبه شمشیر باریکتر است برخی مانند برق میگذرند مثل نور چجوری رد میشه برق؟, برق، اما رد و برق. نور رد و برغ چجور میره؟ نور سرات نور و جرقه که داره میزنه برخی مانند دویدن اسب برخی به طور خزنده و روی شکم و دستها، و برخی پیاده و برخی آویزان که آتش قسمت‌هایی از بدنشان را می‌سوزاند و به قسمت‌های دیگر از بدنشان نمی‌رسد بعضی هم چی میشن بگید میافتن کیا میافتن اینجا افتاده بودن کیا آویزونن اونا که جا آویزون بودن هر چی اینجا به یقین رسید و تبعیت کرد و عبودیت کرد توی مسیر اونجا مثل برق رد میشه فکرای سلمان بر ابوال بر ابوالفضل عباس او سرات مو شمشیره که او حل در سراته و علال ارواحلتی حلت به و حل شده در سرات یعنی امام معصوم و خود راهه یه مثالی بزنم مثال خوبیه قرآن گفت چی؟ مثلا معصوم فرمود که آقا ما حجیم ما نمازیم ما زکاتیم ما تو قرآن اینا دشمنان ما همین نجاست ها رو اسم میبره مش... مشروبن خوکن نمیدونم خدمت شما هست بولن فلان هم مثال بزن تو همین دنیا شم همینه یعنی چی؟ ببینید نگاه کنید آب روشنایه یا نه پاکیه درسته؟ مثلا میگه قسل بگیر وضو بگیر این چگاه میکنه؟ این جسم تو میشوره همون لحظه که داره جسم تو میشوره داره یک اثر روحانی هم رود میذاره یک اثر معنوی هم روی شما داره میکنه میذاره. مثل چی؟ مثل آب تو رادیاتور ماشین به چه درد میخوره؟ اصلا آب توی موتور ماشین بره چی میشه؟ آب روغن قاتش میگونه فاتش خونده میشه آیا اثر آب برای موتور ماشین همون اثری که برای گیاه داره؟ برای من شما داریم که میخوریم؟ نه اون آب اونجا میبینید یک اثر سانویهی داره تحت عنوان چی؟ سرد کردن و موتور ماشین رو چیکار میکنه؟ تعالی میده در اجرای بهتر کارش. اینجای بحثی پیش میاد. اگر من اینجا وضو میگیرم، آقا چی گفته اینجوری وضو بگیریم؟ حالا من اینجوری وضو میگیرم. چی گفته لوله آب باید از اینجای موتور بگذره؟ حالا از دیر لاستیک میگذشه. این عین همینه. هیچ تفاوتی نداره از نظرم چی شده؟ درک نکردیم که اینا اثراتی بر روی روح ما داره. میگه آی مادر وقتی بچه توی رحم داری فلان ماده غذایی رو بخور فلان ماده غذایی رو چی؟ نخور میگه حالا من زیاد میگه آقا کاکاو نخور بچه بیشفعاله میگیره با من دوست دارم بخورم من خوشم میاد بخورم تو حالیت نیستین یه اثر سانویهی در تربیت اون مولودتو داره متوجه نیستش نه من میخوام بخورم یه خانمی بود بچهش بیشفعالی داشت اصلا با قرصهایی به این می دادن که اینو می انداخیم بچه را. اصلا لمس می شود. بعد من گفتم گناه داره این بچه را چه گفتش که نه اینجوریست این یه بار خونه ما بود چشتون روز بد نبینه قرصاش هم تموم شد من فهمیدم واقعا اون قرصا چه کارایی داره اصلا آتیش با اصلا این می توس بشین اتران هم جیم می چکلی تکو می خون بعد می گفت هزش گفته که تو زمان که باردار بودی، کاکاو زیاد آره میگفتم آره بیار داشتم میخوردم. گفت بهت نگفت نخورده گفت چرا؟ فکر نمیکردم اینجوری بشه.ج نفسش رو نگره یه اثری گذاشت. این هم همین ما اثرت صانوی اینا رو نمی بینیم. قرآن قرغین مثال میزنه. میگه والذین کفر رو و یه عاکون که ما این تو غذا میخورن کچیا میخورن؟ چورپایان حیوانات میخورن یعنی اینا از این زندگی دنیوی چی در کردن همین روح الشهوه و, و روح الحركه و روح الحیاتو که حیوانات هم مشترکن یعنی با انسان با بعضی از انسان ها یعنی تو اینجاست که فرق با حیوان نداره ما پنج تا روح داریم که تایید میشیم آرو رو مرحله میریم به بالا دیگه اون دنیا طرف چیز مشهور میشه خوک سگ مشهور میشه چون تو این دنیا با اون سگ فرقی اونایی که کل بلهم ازل و دنیا به بعضی میگیر مثل خوکه دنیا خوکیقت رو میگیره میگه بابای شرف داشتم بی چلان آم هم ازل. آقا بعضی اصلا میگه وقودها الناس ها آتش آتیش جهنم هیزوماش چیه آدم و سنگ یعنی ارزش انز... هندسه سنگه ببینه هیزوم ازش استفاده میکنه میسوزه و میسوزونه هم داره خودش آتیش میگیره هم میسوزنه یه دیگر باز عجب اون اثری که داره بعد از این سه تا روح که حیوانات هم داره مثل شغال روح شهوه نداره شهوت نداره چرا حرکت نداره چرا حیات نداره زندگی نمی چرا اما بعد یه روح به یه روح جدیدی تعیید میشه به روح الایمان این ویژه مؤمنینه محصوم فرمود هر موقع دیدید میله به عبادت درتون به وجود اومده و میله به ترک معصیت دوست دارید از گناه دوری بکنید و خوف از خدا در دلتون نشسته به فهمی تعیید شدید به روح الایمان مبارکتون باشه باز همین باز خوش مراتب دارید تیفه یعنی روح الایمان باز ابتدا داره و چی انتها. بعد از اون یه روح دیگه اسمش روح القدس که اصلا گناه نمیتونه طرف بکنه انقدر براش علم به بدبودن گناه شیخ انصاری میفرمود ایشون گفت من گناه نمیکنم گفتن چطور گفت شما مدفوع فکر فکر انجمه گناه نمیکنه گفتن مگه میشه گفت تولاش تو فکر کردی مدفوع خودتو بخوری من نگاهم به گناه اینه چیه؟ این چیه هم مدفوع این طرفم معصوم چه فرمود گفتند دشمنان ما یعنی بیرون سرات و مستقی میشه معصیت، میشه گناه، میشه قاعد، مدفوع، میشه بول، ادرار، نجاست. جوونی که شاید شیطان گولت بزنه یه موقعی مشروب بخوری، مشروب تلخه، عقلو میبره، یزیدم میخواد. چی میخورد؟ یزید میخورد. حسین شراب نمیخواد. فکر کنم بهترین دلیل برای نخوردنش همین باشه و کسی که حیات میاد اگه میشکسته ها به ما موسیقی نداشته باشه حسین شراب نمیخورد، یزید میخورد تلخه عقلم میبره چرا میخوره دوستان سر همین. اینا رو با امونه با لدینه کفرو داره یاد میکنه کافر که گفتیم بیرون سرات مستقیمن چار شب قبل چی شد سرچشمه روح القدس قرب الهی سرچشمه حیات او مغص که به حیات طیبه میرسه حیات طیبه در همون شجره طیبه است که اون هم معصوم فرمود ولایت اهل بیت ولایت علی همان شجره ای که صحبت کردیم شب گذشته اصلها ثابت فرعوها فسما سما میوه‌شم میده به ازم خدا و میبهش عقلانیت اقلانیت علم و قرب الهی عجب هر چیزی که با... ببینی هر جا آیاتی میاره که ولایت اهل رو زیر سوال بردن مثال میاره خیلی جالبه خدا میگه افلای اقلون اقل ندارید یا علمون نمیخواد علمتون رو به کار بندازید اینا نکته است دیگه قرآن من کانم میتن ای کسی مرده باشه فاحیناه ما زندهش میکنیم این خب از ادامه‌های مشخص این مرگ و زندگی چیز نیست. این مادی نیست. چرا میگه وجعلنا له نورا يمشي به؟ فالناس کمن کمن مثل، مثله فی الظلمات ليس بخارج منها كذلك ذجنا للكافرین ما كانوا يعملون. خب در روایت آمده من کان میتا فاحیینا هو یعنی ولایت علی. یعنی حیات گرفتی. تازه آدم شدی بعد از مرگ معنا پیدا میکنه قراره بری به اون شجره خلد برسی به اون بهشت جاویدان برسی ادامه مراتب الالله الله طی بکنیم در معیت امام معصوم آیه قرآن و ما هذه الحیات الدنیا الا لحوان بگید چقدر جالب یه حیات دنیا جز لحو و نیسته شیکم و زیر شیکم و ان الدار الآخره لهی حیوان میگه حیات اونوره بابا این, این که داری تو, تو رحم دیگه کلی میگن پس بچه پسر جنین پسر از لغتایی که به رحم مادر میزنه معلوم میشه پسره از اول اهل لنگو لغت انداختنه کل جولون دادنش همینه میگن بابا این چیزی نیستا میای میدوی میری می دنیا رو میبینیم قبول نداره. دوستم نداره به دنیا بیاد دیگه مقاومت می‌کنه موقع به دنیا اومدن. چون حیات داره زنده میفهمه تربیت بچه در اسلام قبل از بسته شدن نطفه شروع میشه. با نظری که پدر مادر میکنن با غذایی که میخورن با اون زمانی که نطفه بسته میشه، قرآنی که مادر بخونه با وضوئی که داشته باشه. بعد می‌خواد به اون بچه شیر بده، وضو بگیره شیر بده، رو به قبله بشینه شیر بده. اوه، کتاب‌ها نوشته شده. بل تو اصرون حیات دنیا می رفته دنبال حیات دنیا ول تو خیر و ابقا اما چی باقی بود؟ آخرت بهترم بود اشتباه کردید <تصفح> حالا یه نکسی جالب سلات در قرآن یعنی چی؟ سب سختر یا صلات؟ جواب بلند <تصفح> همه میگن صبرم قرآن نظر دیگه داره میگه استعین و به صبر و و انها؟ معنصت صلات لکبیراتون الا علل خاشه اینجاست خاشه جان جم... از امیرالمومنین پرسیدن حضرت فرمود صبر پیامبر بود و صلات من او را راحت راحت پذیرفتند به من که رسید کارشان سخت ان الصلاه تنها ان الفحشاء آقا این وهابی نماز نمی خونن ببین خود نماز باز میداره باز اشتباه نکنید خود نماز باز میداره از کرد. اما یه سال می‌پرسن این وهابی نماز نمی خونن ناصر الامر. دست راستی بن باص چند وقتیش فتوا داد مجاهدین ما در سوریه در صورت که میل جنسی برایشون غالب شد میتوانن با مادر و خواهر خودشون رابطه داشته این فحشا بریدن سر مسلمانان فحشا فحشان نیست نیست فتوا جواز لواط فحشا منکر نیست اینکه پاینوبات نماز میخوانن ببینید جب گرفت بقرم خونتوز چی شد نه بدون امام آب بازی وضوش نماز بی ولای او عبادتی است بی به منکر علی بگو نماز رو خود قضا کن. اونی که تو رو در امان می‌داره سلات و سراته. سلات و سراته. خیلی جالب‌ها ان الصلاه تنوال الفشار. یا آیه قرآن حالا من قرآنم باز نمی‌کنم. عضت خودت اعرابش هم اشتباه خوندم عض می‌خوام دیگه. آدرسش رو میدم. آیه ولایت می‌نن مولکم الله و رسوله و اللهینه آمین و اللهینه یقیمون الصلاه و الزکات و هم راکشون. اصلاً ویلایت علیت الصلاه می‌ر. آیه بعدش چیه؟ میگه این چیزایی که این ویلایت رو به پذیرن الله و رسولش و اللهینه آمینو، حزب الله، همول، غالب بود، غالب میشن. آخر زمان مال اینهاست. آیه بعدش چیه؟ میگه آیا یه اللهینه آمینو؟ آیا کسی کی ماند؟ لا تتخذوا اللهینه تتخذوا دینکم حزب و لعبا. من الذین او طول کتاب من قبل کن و کفار اولیاء میگه بجنگ که ولایت علی رو بپذیرید که نمیپذیرید مبادا که و نپذیرفتید بعد میرید ولایت که میپذیرید اهل کتاب چی؟ کفار چقدر جالب باز میبینید همین غیر المغذوب علیه هم و لز حالی. اون طرف چی بود احدن سراطل؟ مستقیم سراطل الذين انعمت عليهم هم میگه نری سراغ اهل کتاب و کفارا سراغ جهودا و... مسیحی ها نریده اینا اشتباه ولت اینا نپذیرید اینا رو به دوستی نگیرید آیه بعدش میگید چه؟ تره قرآن میخوانم محلومیست خور چی چی گفته یا داره از زمین صحبت میکنی میروی تو آسمان از آسمان ببین چه میگه و اذان نادهی تم الا سلات انگامی که فراخونده میشید به سمت چی؟ ولایت ها اتخذوها حضوها و لعبا چه میگیریدش؟ به بازی میگیریدش ذال که به انهم قوم لای عقل یعنی چرا؟ چرا این را به عقل شمع ندارن خود خدا میگه دیدید عقل امامت سالات. و اگه بخوام میتونم 500 تا همین تو آیه بخونم در صورت سور جمعه با صحبت سلاته میگه این سراغ چی؟ سراغه و لحو لحوه لحو تجارت باز سراغ دنیا آیه قبلی چی گفت؟ ما هاده دنیا الا لحوه با بلکن حیات اصلی رو به اللهم اجل محیا م... محیای محیا محمد و محمد و مماتی ممات محمد و عالم محمد اینجاست برسم به اون حیات نبوی و اهل بیتش چطور باید برسم گیر نجسات و دنسات و لحب و لعب نباشم تمام نعماتی که خدا بهم داده رو خرج راه عبودیت بکنم نه صد راه عبودیت نه اینکه حجاب هجاب بشه آقا رسول الله فرمودن روایت هرچی میخواد حیات منو داشته باشه یحیا حیاتی و یموت و میتتی این منم بمیره و یسکنو جنت الخلد تو کجام ساکن بشه؟ بهشت جاودان مسکن بگیره علتی و عدنی ربی که خدا به من وعده داد فلیت علی ابن عبیتال خوب بدونی هم تو روایت اهل سنت تو روایت فریقینه این همشیاه برده همسانیه بعد ولایتی که قبول کنه علی ابن او فإنه که براست او لن یخرجکم عمرن لن نفی الا دو در زبان عربی فارسی میکنم عمرن خودمون مثلا خارجتون نمیکنه من خدا و لن داخلتون توخلتون نمیکنه فذلاله یعنی او مسیر کجا میرید اگر میخوای تو بهشت باشی حیات و مماتش هم داشته باشی بمون بهشت برسی فقط مسیر مسیر علی است به خانه دانش تمام شد رفت در مورد اون شجره توبا که گفتیم در روایت میگه امیرالمؤمنینه اون شجره طیبه اون کلمه طیبه ببینید لفظی که استفاده میکنه خداوند متعال چیه آقا رسول الله استفاده میکنه چیه میگه غرف الله غراس الرحمن به یده میگه خدای چی؟ کدوم صفت خدا استفاده کرد؟ رحمان میگه ببین وقتی ولایت حارون حضرت موسی رفت درسته؟ حارون گذاشت جا خودش حارون اخلف نفی قومی وصلح ولی حتی تا به المفسدین تو هم اصلاح کن تبعیت از مفسدان نکن مردم کنارش زدن حضرت حارون رفته بود چیو بیاره؟ قرآنشونو درسته نه؟ البا الباهو بیاره دیگه چیکار کرد وقتی اومد دید کنارش زدن؟ شکونش؟ اگه قرآن نمیگه میگه انداخت نمیشی کن یعنی چی؟ میخواد بگه بدون او ولایت و هارین لازم ملزوم همه هم. اصلا ایت چی میشه؟ خودش گمراه کننده میشه ولا یزید و ظالمینه الا خسارا قرآن رو زیاد نمی کنه لخسرانشونو فلز وقتی مختی سراغ هارون امت امیرالمؤمنین میرن خدا آزمون میگیره چیو جلو جل امیر قرار میده؟ قرآن سر نیز وقتی باز امت آزموده میشن در زبان عبا عبدالله کدام کعبه کنار کدام کعبه قرار میگیره؟ همون که از عباس خود بشه هم خوندم برای چه قبله اینه کجا میرسید؟ کجا قبله اینه همه وایستادن یه ده معدودی با این کعبه راه افتادند. باید آزمون پس بدی. اینطور نیست؟ پس میشه عزیزم به حیات پیام بررسید و به مما رسید با ولایت با همین صراط و مستقیمو اینجا درست زندگی می‌کاری اونجا هم ادامه میدی و اونجا امکانات برای کسی که اینجا خوب زندگی کنه عالی امکانات و عالی قرار در اختیارشون بذارن قرار اون کسی که خدمت شما عرض بکنم سالم به دنیا اومده الان شما میری پشت F14 بشینی میری رو هوایی دندون تو پر کرده باشی می‌ذارن بیرون من زمانی که خواستم برم دانشگاه دانشگاه ش... دانشگاه شهید هم قبول شدم رفتیم اونجا آیا یه آزمونای از آدم می‌گرفتن کاغذمشو می دست گفت پول نو بودی برادم بود گفت بلرزه زاره خلقمشو هیچ چیزی بود اینجا ما رو میچرخوندن میچرخوندم یوهی میگفت پاشون برو را برو خب یعنی سالم سالم باید باشی تا اف 14 بدن بهت هزار تا شرط جسمی داش هستن به کنار وگرنه چی میگه برو ابنار رو پشت پژو بشین برای اون همچین چیزای از راهنمایان هم چیز آزاد نمیخواد اونجا میاد تو سلامت جسمی ازد چی میخوان اینه که بذارش تایید کنه اینه چه هر وسیله داره میاد پایین‌تر چی سختگیری هم چی میشه تو چی اون دنیا داشته باشی اف 14 یا بهجو یا پیاده یا خزنده یا این که در روایت اومده که طرف داره میره زبونش زیر دست و پاهاست نمیتونه کنه ای دارن نمیتونه شکمش گنده شده این کسی بوده که بدال بوده. مال حروم خورده. شکمش نمیتونه از زیر دست و پاها جمع بکنه. یه گیر انگار تو باطلاق داره راه یکی به تازه میاد آرد میشه. آه آتیش میگیرادم، گیر آدم یا او مل حصربت. آ میسوزه آدم یا او داستان سر اینه؟ عزیز دل من اگر کسی به این مقام رسید خودش یهییی میشه. خودش مهی میشه. ولی زایوهی چی میشه؟ زنده میکنه مهمترین زنده کردن هم دلها رو زنده کردنه ولی بله همین زنده کردنه عادی همیشه حضرت ایسا زنده نمیکرد مردو زنده نمیکرد توی که گل برده و چینجوری درست که و که بودت قرآن میگه میگه خلقش کردی ایسا در آن دمیدی یک افتر شده رو پرده به ازنی به اذن خداست در یکی رو آدم موازات امینا ام ارزی هستند که آ شریگه من یه سوال میپرسم این وهابی شده به بین جواب من بده میگه خدا احسن الخالقینه یعنی بهترین خلق کننده است معنا این میشه که خلق کننده های دیگری هم وجود بگید دارن مشرک اله فلان این حرفا چی چیه همه قوه خلاقیت که من شما داریم اما احسن الخالقین کیه حضرت زو خلق کرد طرف امام هادی ابو میگه جعفری کوفی که از ثقات از بزرگانه ایشون میگه که من کنار آقا ممهدی بودم اشتراکا میشونه بعد میگه که پرنده ای رو درست کرد در آن دمید پرید گفتم قربانت برم فرق تو با ایسا چیست که کوهو منی و انا من ما یک ما یک شین چرا او هم با روح القدس تایید شده مرحله بعدی میشه روح القدس که چلو معصیت هم میگیره بعد این بازم روح القدس چی درها تیفه اون آخرش رو آقای مامرزا فرمود روح المتحرم گفت فقط مخصوص ما چارده تنه روح المتحرم اسمش معلومه چیه دیگه ازش میباره ببین اسما این سرات اسمشون داره میگه چیه این سرات سرات حمده محمد سرات بالاست علی سرات بریده از تمام نجسات فاطمه مفتوم فاطمه. همه اش حسنه اصلاه شما ببین وقتی ذکر میگه غیر این میگی میگه الله و اکبر خدا بالاست لا اله الا الله سرات بوریده از همه چیزا سبحان الله تسبیح میکنید این سرات مسیر عبودیه و مسیر خدا همینه گفتیم این تجلیس تجافی نیست یه تنابی اینکه از آسمانی ولد خود خدا اینجا انداخته تا باید. تو داره چقدر با دستت بالا میتونی بریم گفتیم با امام باید پیش بریم نه که در امام ما می میکنیم نه اینکه آدرسی بده بریم گفتیم مثل کشتی مثال زده از یه طرف میگه مصباح فانوس دریایی در ها میذاری هم میری به سمتش، هم توشی تو کشتی بیا بیرون کشتی غرق شدی، تموم میکنی اگر می‌بینی این صهیونیست‌ها این عرفان مثلا کابالا که عرفان این اینا اسم اینا می‌دین دیگه دو تا تفکر ما بیشتر رو کره زمین لازم که میگن دنیا مال ماست تمام یکی شیعه اسماعیلی یکی دیگه هم این صهیونیست‌ها با عرفان کابالا حتی این مسیحیایی هم که فاز آخر و زمانی گرفته اینا مسیحیای ایونجلیستن که اینا با کابالیستن اصن قبالا گرفته میشه قبله یعنی چی همون قبله خودمونه یعنی رفتن اخ... ما گفتیم قبله کی بود حضرت عباس کی گفت کیو گفت کو امامه قبله قبلتون امامه کجا میرید اصلا جالب اصلا تو عرفان کابالا شما میخواید چی بری از طریق چی روش میکنین یه درخت حیات فیلم مثلا حالا من نمیخوام فیلموار اینجا نقد بکنم بنام ندارم مثلا شاه مجلس بالاتر از اینم این مثال میذارم فیلم آواتار که گفتن این نوکسید ای... یک ای طلوع فرض در صنعت سینما بود و نمیدونم چی چی همه چی دورو درخت حیات میگاش دیگه خب آها حالا فهمید درخت حیات چی اونا همش بدل از یک حقیقت فراموش نکن همیشه شیطان و آدم کلاهبردار بدلی چهو درست میکنه یه چیزی که اصلش ارزش داره و اینا سر و اونا نمیرجه کسی بیاد مثلا چه بد درد نخوره مثلا در نوشاوره ما بدلی درست میکنه همینجوری ریخته دوری به میتراولو الان مثلا دیگه 50 تومانی اسکیناس که بدلش درست میکنه نمیصرفه الان تراولو میبدل میزنن تا ارزش داره ایجاب میکنه بدلشو بزنه اگه میبینی اینا ارفان های نوزهوری که الان ریخته و 90 درصد با کابالا اشتراک دارن با عرفان یهود اشتراک دارن از چه گرفته شده عزیز دل من؟ از یک حقیقت رسیدن به امام او میگه خلیفت الله علی الارض بشی اینا میگن ما خدای رو زمین بشیم خدا هم لازم نداریم اسرائیل شهاک یهودی بود برگشت تو جنگ از 1967 شرکت داشت کتاب نوشته مزخرفاتی که اینا اعتقاد دارن گفت آقا ما تو کتابمون رکبتون میگم خواخا ما ما میان میگن یه جایی بعد ابلیس هم بپرستی شیطانو رو میگن عیبی نداره رو بپرسی خود حواسش پرد بشه بعد تو خوشحال میشه خدا رو یهویی بپرسی مگه نه نمیذاره یعنی باج بدیم سر سرات عجب داره توجیه به وجود میارم بر پرستش چی ابلیس حزبو شیطان ببین تو قرآن کیا همینا و قرآن میگه یک گروه از اینا هستن آدم خوبین قلیلی از اینا هستن نماز می خوب اما ما به اونا کار نداریم مخلص شون واسه خوب این سهینوسته کار داریم فلذا جالبه وقتی ولایت امیرالمومنین گفت بعدش ولایت کیو نف کرد بگید همین رو امروز هم بشناسید مسیر حقو با نفی اسرائیل بشناسید خیلی واضحه مسیر ولایت خیلی آشکاره با نفی اسرائیل بشناسید یعنی یکی از روحاتون این باشه ببینید نگاه طرف به دشمن چی؟ راستم تو اسرائیل چیه؟ در مورد این صهیونیستا چیه؟ در مورد یزید زمان چیه؟ الایوملقیامه گفتیم بعد اینو ما حبسش کنیم زیارتش رو میگه. در این داستانی داره. پروفسور توماس مک‌الم که من گفتم، دست قبل گفتم که تو روزام قص مقالاتش میرفت، این کتاب نوشت. اسلام این بایبل. اسلام در کتاب مقدس. این آدم دنبال همین حقیقت شجره طیبه میگشت. جالب این مسلمون نشود بعد به تحقیقون شیعه بشه صاف و مش شیعه شدم اول رسید فقط این در امامان دوازدهگانه تشیع شده نیست میاد یه بحث میکنه گفتیم در مورد درخت حیات درخت حیات در زبان عبری میشه اس حخای خوب و این میگه صاد یعنی صادق اس حخایم جمع میبنه میمش تا محمد داریم چهار تا علی داریم همه اینا رو میاد مثال میزنه ذکر اما اون که حالا من نظر رو من نفیم نمیکنم حالا چون بالاخره یکی از خودشون اومد داره میگه منت بحث علمی اینا رو بر نمیتابه این سیاست بازیارو بر نمیتابه اگر اس حخایی که ارث کردیم این جمعه بعد بذاریش کنار خود اس حخای میمونه و خ در زبان عربی معادل ک مثل ملکوت ملکوت خاخام حکیم اینا میگن خاخام خاخام هاخام آ یعنی گرفته شده اینجا که میشه اس, می اس ح که این میشه درخت حیات که به طرز عجیبی با حروف مقطع سور مریم جور کاف ها یا عین صاد هم حروف و جالب تو همین سوره شروعش با داستان کیه آقا روایت در مورد کاف ها یا عین صاد روایت آقا امام زمان یعنی کی؟ میگه تفسیر این را میگه یه خود ماجرا ماجرای درخت حیات اینه اومدن شاخه هاشو قطع کنن نفهمیدن که این درخت زمینی نیست فث سما متوجه نشودن اومدن جلو غلط بزرگی کردن چه اشتباه بزرگی کردن متوجه نشودن بعد بلا فاصله داستان کیو میگه شروع اد سوره داستان حضرت زکریاست که کیو میخواد یحیی خیلی یا انا ان نبشرک بغلام من اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا خدا تاکید میکنه میگه این اسم قبلا رو هیچکی ما ازشته بودیم یحیا، حیات حی و یحیایی که اصلا نظر مصیبت ابا عبدالله است که سرش بریده شود در تشت طلا گذاشته شود و حضرت زکریه تقرب میجوید به خدا با گریه برخسیم. برای اینکه خوب بتونه اینا در میگه من خواهد مثل رسول الله میشم. میخواهد فرزند از دست بدم. روایت داریم از امام رضا که آقا خدمت شما عرض بکنم حضرت ابراهیم وقتی میخواهد سر ببره خدا گفت قبول کردم. برو. مسیبت عظیم زبه عظیم میخواد. و اینا ها به زبه عظیم. عظیم. اصلا این واقع اتفاق افتاد توی که اول سر بریده نشد سر اسمایل. خدا بیخیال شد. آن حرام لغمه هم که به گودال آمد اول بریده نشد. تا اینا جری بودند. عجیبه. یحییارو رو مثال میزنه. جالب عبارتهایی که در مده حضرت یحیار اسمی میبره خیلی شبیه حضرت است یعنی مقام بسیار بالایی داشت شد. مثلا نظر حسین یحیار. من رفتادم مسجد جامع اوموی در سوریه قبر حضرت یحیی اونجاست این مسیحی ها میان زیارت این خانواده بت میمدن با اون تیپ بالاخره اروپاییشون میگه کشور اروپایی مال یه لباسی به اینا میدادن تنشون میکردن کلاهایی هایی داره اینجوری مینازه مثل هاشون تا روی صورت نمیومد بعد انداز زیارت میکردن میگفتن میخندیدن اون بغل نشسته بودن با موبایلشون بازی میکردن بعد این طرف مقام راس حسینه. ما این طرف بودن با چند نفر از اساتید دانشگاه رفه بودیم اونجا بعد آی دکتر سه تااش میرلو هم که نامشون بیست سال امریکا زندگی کرده. اصلا از امریکا یا بهتر انگلی سربت میکنه. بهقول لحظ. بعد اینا اومدن گفتن این آقا کیه؟ این شروع که توضیح دادن باید میدیدیم مثل ابر بهار گریه میکنن بر حذتی ی گیریه نمیکرد. و خودشون تعجب کردن گفت این چرا اینجوری؟ گفتیم یه مدت رس اینجا بوده. سر اینجا بوده تا زلان نیست پا او نزد به اینه یه از حیی میاد ازش شروع بشن این جهوده صدرستان خوب میفهمیدن اینا رو خیلی از آیه 900 آیه قرآن در مورد این هاست 900 آیه قرآن در مورد این هاست. چون تا آخر و هم نبرد با همین سهی نیست هست. چون تا آخر و هم نبرد با همین هاست قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم بگو خدای من مرا هدایت میکنه به سرات مستقیم همون سرات دینن قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما كان من المشرکین یعنی همون مسیر ابراهیمه همون مسیر حنفیت ما کان ابراهیم یهودی هم ولا نصرانی بل کان حنیفا منظور تسلیم امر خدا بود سرات مستقیم خدای پیغمبرش میگه بگو سرات مستقیم سرات تسلیم خدا بودنه سرات عبودیته قول بگو انسلاتی و نسکی و محیای و مماتی ما اونجا میگیم محیای و مماتی همونو میخواییم دیگه برای کیه؟ لله رب العالمین میگه اون برای سرات بکی با. دست, با دست کیه به خود خدا میرسی به سر چشمه حیات میرسی خدا میگه این شجره تییبه رو فرشته ها غرص نکردن نکشتن به یده خود خدا کاش با قدرت خودش و رحم حضرت هارون اونجا رو نگاه کنی گفت به یاد حضرت هارون وقتی طبعیتشو میزنن کنار میگه یا قوم اطابعونی و, و امری امری ان ربکم الرحمن یعنی امامت من باب رحمانیت نه رحیمیت چرا چون رحیمیت یک رحمت خاصه بس میگه همیشه امامت که نه برا کل مردم فرستاده برای کل مردم فرستاده امامو قدرشو نمیدونن برای همین به حضرت ابراهیم وقتی امام میشه میگه انی جائلو که لناس اماما نه لقومک نه فقط برای قومت قبلا پیغمبر قومت بودی اما شدی امام برای همه مردم لناس این رحمت واسعه است رحمانیت خداست چقدر زیبا استفاده میکنه خدا اینا از قرآن چه میفهمی میخونیم آن رحمان رحیم هم میگو غفور هم میگو میرفتیم بازشون میگو آنه یه خوده فکر میانم خدا میبخشد نه او حساب شده کلام الله دیگه شما نه نهجل بلغره. نه هیچ کتابی رو نمتونی مثل قرآن با صوت میخونن نمتونی بخون مسجع همه چیش جور چند وقتی شبید سخن روی داشتیم توی همایشی حاجهایی بودن سید بود حسینی ایشون مدتی مبلغ بودن در افریقای جنوبی ایشون اومد بحث ریاضیات و قرآن و مزرک حسن شما میمیدید نگاه میکرد شاهکار عجیب قریب حالا نه که ما ریاضی بخواهم قرآن رو اثبات کنم نه می‌خوام بگم از هر زوجهات از هر جا برسم قل یا ایوه الناس بگو ای مردم انی رسول الله من رسول خدا الیکو. سمت شما جمیعاً الذی له ملک جمیعاً علیکم جمیعاً برای شما همتون الذی نه فقط برای تو و برای اون یک شن برای همتون منو فرستاده خدا الذی له ملک السماوات و, و الارض برای اون خدایی که زمین و آسمون و آسمون‌ها عصم دستشه لا اله الا هو یحیی یمیت میست خدایی به غیر از آن خدای یکتا زنه میکنه و میمیرونه لا اله الا هو یهی و یومید پریشت گفتن لا اله الا هو یعنی چی بله در مورد شیخ مرتزه زاهد نقل شده میگن ما داریم که اگه هفتاد بر سور خمدو بر مورده خوندی زنده شد شک نکن تعجب نکن شگفتی به دست نازد یه گفت ما شنیدیم دانشمندان کنونی هر نظریه ای را آزمایش میکنه بیایید ما هم آزمایش کنیم یه مورچه مرده بود و برداشت او وسط نصفش کنیم ما تعجب کردیم چون ایشون به مورچه مرده هیچ کارش به حکمت نبود این که نه امامه نه معصوم یه از اولیا یه میگه شروع کرد بهش نگاه میکرد سوره هم دو میخون میگه نفهمیدیم چقدر خون چند تا خون یعنی هفته تا میگه به چش دیدم اینو تکون خوردن تکون خوردن رسیدن به هم دیگه موشه دوید اون شده خد همین الان اتفاق افتاد تو همین عصر معاصر دیدن من چقدر شفا دارن میگیرن هی یک گوشه این هی میشه این حیات مادی جسمی و خون تو قلب به و به مغز نمیدونم اکسیژن رسانی کنه اینه اصل حیات اون طرفه وگرنه به هزار سال اینجوری عمر کنم بالاخره میمیره یا نه هر بیشتر عم کردی خدا بهت مهلت داده امحال بوده با سنت استدراجم پدرتو درآورده اصلا متوجه نشدی همه چن بد داده که اصلا سمتش نیای تو این دنیاام زیاد بلا سرت نیورده که کفارت نباشه صاف بیای همونجا پوستتو اساسی بکنه مردن پس یک ترنسفره یک انتقاله پا چی ازش نیست برای کسی که تازه برای کسی که میخواد خواد او این پا به چه دردا میخوره خوره الان جنینم پا به دردم نمیخوره چش به دردم نمیخوره خوره عشق داره مثل خطبه متقین که امیرالمومنین فرمودن روح از بدنش می پر بکشه چه مردنی خوشگل تر از کشته شدن به دست دشمنان خدا چون این تائیدی مهر تائیدی است برای این که صد درصد طرف تو کجا بوده تو صراط مستقیم بوده عجب لذتی داره ها بچه شما برخورده با یک آدمی که تو سرات مستقیم نیست مثلا برخورده با یک چی میشه؟ یه هیوان مثلا طرف میمد به احلیب توهین مثل مثلا یه سگی که پارس میکنه چیچی رو نگاش میکرد؟ چیوی؟ این نونی بهش میدادن از امام حسن و یقی امام حسن رو گرفت شبه که توهین کرد حضرت فرمود از فوشات معلوم اهل شامی. یعنی این فوشات میدین شامه فوش آبی است غذا خوردی اینجا آمدی جاداری مثلا یه حیوان تو کوچه پیداش میکنیم غذای بهش میدی خود بزرگیش میکن و ولش میکنیم فقط دیگه با حیوان نداره و اینها چقدر مهربانانه به رفتار می یه مثال قشنگ تو دو سخنران گفتم یکی دو تا سخن انجام جا داره بگم. من عضر میخوام الان خصوص از ممسئ اولمش داره اضافه <تصفيق> گویی میکنیم. یه بچه دو ساله به بچه سه ساله دواش میشه یه مثلا تو گوششمون یکی اون شمون... مزن دخت دو ساله با پنج ساله میزن تو گوشش اون نگاه میکنه بعد میزنه یه پش ده, ده فکر میکنه دو ساله با ده ساله مثلا دهوانه میشه اسمش یه برمیره باید مادرش باید با این بچه تو جمع کن دو ساله بیست ساله یه یکی به پاش چسبیده داره میگه. و مادرت کوچوز که ما بچه ها دفعه بعدم بیاد بچه‌رو نبینه چی میگه میگه بچه با مذهی داشتی چرا اینجا تو خونتون میومد عزیزم ها آقا رسول الله از خونه میخواستم برم بیرون افخان رستم باید رد میکرد یکی کسافات شکنبه گوسفند و حیوان رو سرش میگه یکی خاکستر میره. همین معاویه هر اون لقمه بچه بود هنده بلم شده از کله صبح میرفت خارجم می‌کرد میورد میرخت سر را. که پای حضرت رو زیادت بکنه جلوی رو ور درست میکنن گرد میکردن خار توش میکاشتن بعد میدادن میزد میخورد به حضرت حضرت میدونسه بچه نمیفهمه همینش صداش میکرد میگفت دوباره بخوای اینا بری درست کنی دستت زخم میشه بیا همینا رو بگی دوباره بزن یه شب یه روز حضرت گفت او یه مرحله بود اینجا خاک سر و سر ما میریختن سه روز نمیريزن کوش کون <تصفح> بچشه بچه نبود آ پیرمرد یهودی بود حزادر به ایادتش ببین ماها کوچیک کتولیم به همه چی میپریم یه چیزی اونجا سریع جواب میدیم از توجه نمیکنه امیرالمومنین میفرما بعد از رحلت بعد از شهادت و فاطمه حقمو خوردن سلامم هم, هم جواب حقمو سلام سلامم که نمیکنه هیچ سلام سلامم جواب نمیدن رد میشم فوش میدن امدنم علیشو بلند میگن که یعنی حضرت میفرماد با خودم میگفتن با علی دیگری هست بزرگه یه دریاز با دهن زدن سکه با دریاز نجس نمیشه ابو عبدالله امید به هدایت همونو هم داره همونایی که آمدن برای قتلش میگه نمیفهمه شاید بودن ها بودن افرادی هم برگشتن لحظه گودال ادی بودن یوهایی دیگه این رو نتونستم بربطه شروع کردن به هم حمله کردن همون جه هم کشتم اونام شهیدم خواد هدایت بکنه حضر زینم نمود آن کسیست که اثبات کرد این شجر حیه ارزم تمام بود دقت کنید شب آشروع از آقا عباد الله مطمئنی به اینا دلش نگرم گفت اینا فردا تنهاد نذارم حضرت پاسختا به خدا سوگند ایشان را آزمودم و آنان را انسانهای سین سپر کرده یافتم به ای که به مرگ زیر چشمی نگاه میکنند و از مرگ میترسم به مرگ زیر چشمی نگاه میکنند و شوقشان به مرگ کمتر از شوق کودک به شیر مادرش نیست استیناس و طفل به لبن امه ی حمون که امیرالمؤمنین فرمودند گفت شوق علی ابن ابی طالب به مرگ از شوق نوزاد به پستان مادرش بیشتر است این مماتش هم ممات اهل بیتیه ترسی دارند مسلم بن اوسجه چی گفت یا رسول الله وقتی چراغ رو خاموش کردن گفت فی ابن رسول الله در جهان کسی از ما لعین تر نباشد پستر نباشد اگر اینجا تو را رها کنیم پناه میبریم به خدا از اینکه از رکاب همایونی تو دوری کنیم خدا هرگز روزی را نیاورد که من چنین کنم حتی اگر سلاحی به دست نداشته باشم با پرتاب سنگ به جنگشان خواهم رفت و هرگز از تو جدا نخواهم شد تا در رکاب تو کشته شوم اینا این میشن سعید بن عبدالله چی میگه میگه سوگند به خدا هرگز تو را رها میکنیم تا برای خدا مشخص شود که سفارش پیامبرش را نسبت به او عمل کرده‌ایم و اگر بدانم که در راه تو به شهادت میرسم و سپس زنده میشوم و ذرات وجودم را بر باد میدهند هفتاد بار من با من چنین میکنند باز هم از تو جدا نخواهم شد یعنی هفتاد بار تیک تیک کنن کنند بسوزوننم خاک سرم رو به باد بدن دوباره میگم زندم میکنیم هفتاد عدد کسرتی یعنی همی خیلی آشورا اثبات کرد این شجره حیات محض با ضربه زدن به این درخت این خراب نمیشه با آتش زدن به این خونه این خونه و لم نار آتش به این شجره نمیگیره نمیتونید خرابش بکنید یریدون الیطفو نور الله با افواهم والله متما نور هی ولو کرهت میگه میخوان با فوت نور رو خاموش کنه نمیگه نارا, نارا ال احمقان از کارتون چون خودشون خیلی زمینی بودن به جنگ امامت که آمدن به جنگ باسترات و مستقیم چجوری جنگیدن؟ زمینی جنگیدن با تن کار داشتن با تن کار داشتن با بدن کار. چه کردن با علیه اکبر؟ ارون اروا با بدن کار داشتن اما انسانهای اونجا چار دسته میشن آدم یک یه دو اونجا جلی امام زمانشون بایستادن به درک باسه شدن حلاکه از رقش یه اده زنده موندن مثل کسه که بعد ساده, ساده سکه هم مثل شبسته بندن یه اده این طرف شهید شدن شهده های کربلا یه اده هم بگید ماندن اون شهیده که رفته بگید همه بار رودوش کیه؟ اونی که مونده باید اثبات کنه این شجر حیه تمام دفتر کربلا رو اون آخری رفت جمع کرد یعنی مهر خروجی رو اوزد پیامبر مثال چند جا زدم جا داره پیامبر مثل این نوز بالله پلاهش مثل بنری که میزنن همه رو دعوت میکنن بیاید خودش هم دعوت میکنه بیاید بیاید به سمت من امام اینطوری امام باید به سمتش بری مثلا امام که مثلا چه بود بری سمتش مثلا سخنرانی یه عالم بزرگ اومده سخنرانی میکنه بعد میگن آی بیاید سخنرانی سخنرانی بعد میگن پاشید برید سخنرانی چی شد تموم شد دلیلم براتون میارم حضرت فهمت که بدهی دارن بگید برن تموم شد بشید بیرید تر ماه رفت اونایی که گیر دارن دنبال علمن عاشق علمن میبینن این سخنرانه معمولا یه دری یه میبرن جدا پشت سنی یه جایی هست سری میبرن این سوال موشنش شما میبرن دنبالش شکا میکنن راه میفتن میرن اونا کسان که امامت و فهمیدن دنبال سراط داره میگرده چی شده؟ میدونن اون این راه به کجا میشه به خود بهشت به خود خدا به سرچشمه حیات اینو هی دنبال آب حیات میگردن و نمیدونم چی همه امامه ببین کسایی که دید شب عاشورا بعد از اون ماجرا از عبادلال بین دو انگوش نشان داد بهشون برای همین در پوست خودشون نمیگونجیدن آبس با زره به میدان رفت خیلی رزمنده بود ترسیدن زرهشو دره بود بابا با یکیتون بیا جلو دیگه عباسب نعلی میاد جلو به عباد الله میگوید زاق صدر داره میتره چی بسا برم از برم او برو آب بیار او باید آزمونش تو جا و چگانه تر کاری که ممکنه ها به سرلشگه رو بگید و رو آب بیار ها و عباس کار نداشت این آبه حرف امام زمانم ساقست من گیری شخصیت هم اینجا را. که او هم دید بین دو انگشته گذشت؟ اما گفت شما برید من میمونم یه فیلم ها دیدی فیلم جنگی میگه شما برید من اینا رو نگه میدارم و شما برید من نگه هم دارم چی بود؟, بود. بعد جمع کرد دفتر رفت گودار پیچر متحر آور بلا تقبل منه مازل قلیل اینا کسان که امامت داری کنه یعنی مفهوم امامت رو فهمیده می خدایا مثل یه فقیری که در خونه سروتمنده میره یک کاسه آش میبره میگه ببخشید شما هر روز غذای خوب خوب میخورید ببخشید کمه اما نظریه دیگه نظریه بپذیر از ما ما جزی نداریم برگ سبزی توفه درویش چه کند بی نوان ندارد بیش بیشتر ندارید تقبل منه نهازل قرید هازل القربان اون از ما بپذید و چه کشید و علمداری کرد خطبه های خون که اصلا او نگه داشت به خدا قسم قشنگ گفت کربلا در کربلا میمونده گذنی نمونه بود باید امروز اثبات میکردیم که کربلای بوده دیدید چجوری همه میان و کجا معلوم ها باید اثبات میکردیم که کربلای بوده به خدا قسم زینب نزاشد زینب نذاشت. زینب کسیه که فهموند به ما این شجره حیات همین جسم نیست از امامی به امام دیگر امامت منتقل شد و سروری منتقل شد و او تابع هر دو بود از لسان حضرت زینب قشنگ گفته خطاب عباد الله از جان خود اگر چه گذشتم راحتی دل کندم بلی زتندت با چه زحمتی میخواستم به پاد سرم را فدا کنم. اما به خواهر تو ندادند مهلتی. کی گفت قطع قطع شدن در داور است؟ مردن به عشق تو که ندارد مشقتی. بهتر نبود جای تو من کشته می شدم. بهتر نبود جای تو من کشته می شدم. بی تو چگونه صبر کنم با چه طاقتی؟ از بس برای زخم لبت گریه کرده این چشمی ندیده این که نبیند جراحتی تو رفتی و حریم حرمت شکسته شد <تصفح> تو رفتی و حریم حرمت شکسته شد هنگام قارت حرم آن همچه چه قارتی این بچه ها تمامیشان لطمه خورده با من ولی به شکوه نکردن صحبتی تفلی میان خارها و آتش به دامنش میسوخت سوخت از ضرب آن سیلی لعنتی انگشترد اگر چه به یغما برده شد ولی انگشترد اگرچه به یغما برده شد ولی می سوزم از غم انگشت قیمتی. شرمنده روغیه تو در خراب ماند. شرمنده ام روغیه تو در خراب ماند. لطفی کن و سراغ نگیر از امانتی. قصد نخور حقیر نشد خواهرت حسین. قصد نخور حقیر نشد خواهرت حسین. از فتح شام آمده ام با چه حیبتی عباس اگر نبود اصارت چه سخت بود عباس اگر نبود اصارت چه سخت بود ممنونم از حمایت آن چشم غیرتی و سیغلمون لذیم نزل همو ایمون قدر انگه بود اللهم عجل ویرینی شد الافیت و الناس اجعلنا من خیر اعوانهی و انصاره